اما این ماجرای آقای محمد گندم نجاد توسی که باتا قبلش تو این برنامه راجبش صحبت کردیم ملقب به آقای سعید توسی که از قاریان ممتاز قرآن و یه جورای سوگولی معظمله هم بودن در این مدت از هان خیلی ها درگیر خودش کرده و برای همین ما امروز دعوت کردیم از حاجاغاین در مؤمنین به عنوان کارشناس مسائل دینی تشریف بیارند به استودیوی برنامه و در این مورد به شبهات پیش اومده تا <تصفيق> <سخت> بدن بله <تصفيق> بله لفظ حاج آقا برای معرفه یک بایت الله اله ما والا به نیست بلد بلد. بب... ببخشه بله بله بله حق با شماست دیگه حالا البته فرقی هم نداره بله. شنوندای ما شما رو میشناسن دیگه هاجی دیگه فرق نداره دیگه بنشینو بفرمایید با تمرگ هم هر سه یک معنا دارن هاج آقا شما میگویی انگار گفته باشید به تمارگ دیگه ای بابا جسارت نکردم من جناب بله. آیت الله اندل مؤمنین فرصت نداریم زیاد بله. خواهش میکنم برای ما بفرمایید این ماجرا آقای طوسی چی بوده و چرا واقعا یه معلم و قاری قرآن باید هاج کودکانی رو که برای گرفتن بهشون سپرده شدن اینجوری مورد سوء استفاده قرار بده اینو بله لطفن... ببینید مجرح البته به این شکل هم نبوده اینها را رسانه های بگانه بزرگ نمایی کردن یک سوعتفاهمات جزئی پیش آمده کناشی از اختلافات فرهنگه بین این استاد قرونغادر و دانش بوده سوء تفاهم با... جزئی بله چیا آخه طرف بچه های مردم سوار ماشین کرده ببره جلسه قرآن بعد سر رو گفته وای چق هوا گرم با... و عرق کردیم اونم قبل از جلسه قرآن باید با هم بریم حموم. آخه این اختلاف فرهنگیه؟ این من این مشکلش کجایم؟ همش مشکل دیگه آج آقا همین حمام بردن مشکل نیست. ما خودمون هم در دوران طلبگی همش با اساتید عزیزمون حمام میرفت. جان شوخی میکنی حاج آقا خدا مگه شوخی داریم ما با شما؟ یعنی يعني... ورا خودمان شاگرد محبوب اساتید بودیم در هم ای وای من هاجاقا میگم حالا میخواهید ادامه ندید حالا بعد از برنامه برای من خودم شخصا تعریف کنید که چه اتفاقای ناگواری میفتاد تو هموما بی خیال دیگه ناگوار چیه ده گه تو هر اتفاقی میافتاد گوارا بود انگار یعنی چوجا بابا شما قربانی هستی خودت پس من واقعا ناراحت شدم هاجاقا نمیدونستم ما جوری... به نحوی برای اساتید کیسه میکشیدیم که به ما با... لغب کیسه کش عظمه دادم با... آقا ویل کن وارد چارثیم... جوزیات نشید آقا جان بب... لطفاً رو آنتنیم فرض اه... آنتنیم که باشیم عجب... مکه چیه؟ تازه ما یک جوری بب... برای حضرات اساتید کف درست کردیم که بب... چند بار مثلا حضرات آیت الله جنتی بب... آدمان میآید بب... آید کف ها گم شدن ها. گم شدن؟ یعنی چی گم شدن آخه بله و خب هنر ما این بود که کفهای بزرگ درست میکردیم دیگه حدرت آیت الله جنتی هم نودو بله ریزا پیزا بودن <تصفح> بود که کف رو که میریخدیم رویشون به. کلان محو واقعا حاج آقا به نظر من دیگه اون بله بله. قسمت بعدش رو نگید دیگه من به خاطر خودتون میگم البته ها حتی بله. بله. مخواهن... تون... فوقا قسمت خوبش منده که بحثه. شیرین ماساج بود ماساج؟ این... آج آقا اتفاقا من برام سوال چرا باید بلد. معلم قرآن شاگردش ببره هموم چرا باید معلم قرآن چرا ببره هموم چرا باید, اینا داره ب... باید معلم قرآن میشه؟ اجازه میدیم مل اون ما خاطرمون را تعریف بکنه یا نه؟ بله بله بفرمایید خواهش بکنم بفرمایید بس ده ده ده؟ در اینجا حضرت آیت الله خاتمی یک اخمی به ما میکردن و میگفتن پسر برو بالا. خود برو بالا یعنی, بله. یعنی چی ها بالا یعنی ایشان روی شکم عقد می شدن روی طب. زمین بب. بعد ما جفبا می پریدیم روی کمر مبارکشان می... آها یعنی این... راه می رفتید روی کمرشون بله, ت... بله. یعنی ایک جور راه میرفتیم که حضرت آیت الله خاتمی حس پیاده رو بهشان دست می داد دیگه از حال میرا فاجعه این... خب ب... ب... ب... بعدش چی میشه دیگه خیلی حس پیاده رویشون تشرید میشد میگفتن یکی بیاد ما رو آسفالت بکنه <تصفيق> بله آقا <تصفيق> <تصفيق> باشه خیلی ممنونم دیگه لذت بردیم از مصاحبتتون و حمام ده... نمیخوای بری عیون حاجی میگم برنامه بلا. زنده زشت جلویشون نمنده این حرفا واقعا همین که بهداشت رای رایت رعایت نمیکنید شما باعث شده عجب... اینقدر ملعون باشید آقا شما باشه شما خوبی باشه بفرمایید آقا موزیکو برو بالا ول کن ای بابا بساتی کنیم ما یکی را پیدا بکنیم که با ما همم بیاید دیگه آقا بفرماید این برادر سعید نمی آیه. نه خیر بفرماید آقا جا عجب بست بفرماید آقا موزیکو برو بالای ول کوین تا صبح میخواد خواد به کیزه